اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خداوند لام نزل الكتاب لا ریب فيه من رب العالمين. این إن است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده و شک و تردیدی در آن نیست أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذیر من لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ولی آنان میگویند محمد آن را به دروغ به خدا بسته است اما این سخن حقی است از سوی پروردگارت تا گروهی را انظار کنی که پیش از تو هیچ انزار کننده ای برای آنان نیامده است شاید پند پندگیرند و هدایت شوند الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في سته ايام استوى على العرش ما لكم من دونه من ولا شفي خداوند کسی است که آسمانهاب و زمین و آنچه را میان این دو است در شش روز آفرید. سپس بر عرش قدرت قرار گرفت. هیچ سرپرست و شفاعت کنند برای شما جز او نیست. آیا متذکر نمیشوید؟ يدبر الأمر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون امور اين جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر میکند سپس در روزی که مقدار آن هزار سال از سالهایی است که شما میش مرید به سوی او بالا میرود و دنیا پایان نمی ذالک عالم و العزیز الرحیم او خداوندی است که از پنهان و آشکار باخبر است و شکست ناپذیر و مهربان است. احسن كل شيء خلقه و خلق الانسان من طین او همان است که هرچی را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد ثم جعل نسله من سلالت من ماء بهین سپس نسل او را از اصارعی از آب ناچیز و بیخدر آفرید ثم سواه ونفخ فیه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشكرونسپس اندام او را موزون ساخت و از روح خیش در وی و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد اما كمتر شکر نعمت های او را به جامع آورید وقالو ا اذا ضللنا في الارض ا انا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون آنها گفتند آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین گم شدیم آفرینش تازه ای خواهیم یافت ولی آنان لقای پروردگارشان را انکار می کنند. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بكم ثم الی ربکم ترجعون. بگو فرشته مرگ که بر شما مأمور شده روح شما را میگیرد سپس شما را به سوی پروردگارتان باز میگردانند. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَنَا كِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا رَبَّنَا وَسَمِعْنَا فَرُجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُقِنُونَ و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سربزی رفت کنده میگویند پروردگارا آنچه وعده کرده بودی دیدی و شنیدیم ما را بازگردان تا کار شایسته ای انجام دهیم ما به قیامت یقین داریم ولو شئنا لاتینا كل نفس هداها ولكن ولكن حقا القول منی من لاملا أن جهنم من الجنه والناس اجمعين و اگر میخواستیم به هر انسانی هدایت لازمش را میدادیم ولی سخن و وعد حق است که دو را از افراد بی ایمان و گناهکار از جن و انس همگی پر کنم فذوقوا بما نسیتم لقاء يومكم هذا اننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون و به آنها میگویم بچشید عذاب جهنم را به خاطر اینکه دیدار امروزتان را فراموش کردید ما نیز شما را فراموش کردیم و بچشید عذاب جافدان را به خاطر اعمالی که انجام میدادید تنها کسانی به آیات ما ایمان میآورند که هر وقت این آیات به آنان یادآوری شود بی سجده می آفتد و تسبیه و هم به پروردگاریشان را به جامی آورند و تکبر نمی کنند. تتجاف جنوبو معن المضاجی دعوان ربهم خوف و وطم و ممن رزقناهم یوفقون. از بسترها در دل شب دور می شود و به پا می خیزند. و به درگاه خدا میآورند آبرند و پروردگار خود را با بیم و امید می خانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق میکنند کنند فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قروت اعیون جزاء, جزاء بما کانو یعملون هیچ کس نمی داند چه پاداش های مهمی که مایه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده. این پاداش کارها است که انجام می دادند. آیا کسی که با ایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟ نه. هرگز این دو برابر نیستند. انما الذين امنوا وعملوا فلهم فلهم جنات المقواه نزلا بما كانوا يعملون اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند باغهای بهشت جاودان از آن آنها خواهد بود این وسیله پذیرایی خداوند از آنهاست به پاداش آنچه انجام میدادند و ان فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان منها فيها وقيل لهم و قیل لهم ذوق عذاب النار لذی کنتم بهی تکذبون و اما کسانی که فاسق شدند و از اطاعت خدا سرباز زدند جایگاه همیشگی آنها آتش است هر زمان بخواهند از آن خارج شوند آنها را به آن باز میگردانند و به آنان گفته می شود. بچشید عذاب آتشی را که انکار می کردید و من العذاب دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون به آنان از عذاب نزدیک عذاب این دنیا پیش از عذاب بزرگ آخرت می شاید بازگردند ومن اظلم ممن ذكر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون چه كسی ستمكارتر است از آن کس که آیات پروردگارش به او یادآوری شده و او از آن اعراض کرده است مسلما ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَائِهِ, لقائه وَجَعَلَّاهُ هُدَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلِ ما به موسا کتاب آسمانی دادیم و شک نداشته باش. که او آیات الهی را دریافت داشت و ما آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم وجعلنا منهم ائمتا يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بآياتنا یوقنون. و از آنان امامان و پیشوایی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت میکردند، چون شکی با این نمودند و به آیات ما یقین داشتند این بینهم فیه البته پروردگار تو میان آنان روز قیامت در آنچه اختلاف داشتند داوری میکند. اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون آیا برای هدایت آنها همین کافی نیست که نسل های زیادی را که پیش از آنان زندگی داشتند هلاك کردیم اینها در مساکن ویران شده آنان راه می روند. در این آیاتی است از قدرت خداوند و مجازات دردناک مجرمان آیا نمی شنوند؟ اولم یرو اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا فانخوره جبی ز گومین هوعم هم وافوسوم افلا یبصرون آیا ندیدند که ما آب را به سوی زمین های خشک میرانیم و به وسیله آن ذرعتهایی میرویانیم که هم چهار پایانشان از آن میخورند و هم خودشان تغذیه میکنند آیا نمی بینند؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقین آنان میگویند اگر راست میگویید این پیروزی شما کی خواهد بود قل يوم الفتح لا ینفع الذین كفروا ایمانهم ولا هم ینظرون بگو روز پیروزی ایمان آوردن سودی به حال کافران نخواهد داشت و به آنها هیچ مهلت داده نمی شود فأعرض عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ حال که چونی نست از آنها روی بگردان و منتظر باش آنها نیز منتظرند تو منتظر رحمت خدا و آنها هم منتظر عذاب